فصل 25 در اواخر ژوئیه به وسیله با خبر شدیم که پدرم و پولت از پیل بیچ بازگشتند و با وصف تمایل تمایلمان به آنها تلفن نکردیم پدرم هم برخلاف عادتش در مورد بازگشت خودش و پولت خبری به ما نداد ما یقین داشتیم که او از دست ما خشمگین است شاید هم فکر میکرد من وسید ورگرد شده ایم و نمیخواست دیگر ما را ببیند. تابستان تمام شد و ما قبل از آنکه به خانه فراز تپه زیاد دل ببندیم آن را ترک گفتیم و به بلاک فوکس رفتیم. سرانجام تصمیم گرفتیم با پدرم رابطه برقرار سازیم. فرانک پای تلفن به ما جواب داد و ما صدای جوانش را شناختیم. او گفت حالتون چطور است؟ حتما به دیدارش بیایید. آخر او پدر شماست. مگر اینطور نیست؟ بعد به دیدار پدرم رفتیم. پدرم با صدای آرام گفت مدت درازی است که شما را ندیدم. ولی از طرز نگاهش معلوم بود که هنوز در فکر شیشه های شکسته خانی اروا است. ما خاموش ماندیم و او ادامه داد. لابد میدانید که خیلی بچه ها را به خاطر شکستن شیشه پنجره ها به دار و تعدیب فرستادهاند. پدر شما لاین قطع کار می و بچه هایش شیشه های پنجره خانه مردم را می شکند. ما سعی کردیم به او بفهمانیم که فقط قصد داشتهیم ارواح را از آن خانه برانیم ولی او صحبت من را قطع کرد و گفت نمی این را بدانم شما ملکی را خراب کرده اید فکر نمی کردید که باید قرامت آن را بدهم؟ اگر این کار را نمی پلیس شما را بازداشت می کرد. پدرم مثل همان روز که بطری های لیکور را به آقای سلزنیک فروخته بودیم، ما را سوگند داد. می دانستیم گناه کار هستیم و با وحشت و حراست در انتظار کیفر خود بودیم. پدرم گفت، پسرک ها، این کار شما هزار و پانصد دلار برایم تمام شد. دیگر آن را تکرار نکنید وگرنه سخت تنبیهتان خواهم کرد. همین قسم بود و بس. از تنبیه خبری نبود. و پدرم آن را با لحنی آرام گفت. خیلی تعجب کردیم و پس از اندکی تفکر، یکی از جنبهای اخلاقی پدرم را در این یافتیم. پولت خوشبخت بود. کارش هم رونق گرفته بود. نقش کوچکی در یک فیلم به او سپرده بودند و موفقیتی هم به دست آورده بود ضمناً قراردادی با یکی از کارگردان های مشهور بسته بود تا نقشی در یکی از فیلم های او بازی کند فابل اخره آنچه برایش جالب تر بود این بود که پدرم سناریوی تهیه کرده بود که در آن پولت می بایست نقش مقابل گاریکوپر را بازی کند برای اولین بار بعد از دو سال همه چیز برای آغاز فیلم برداری آماده بود پدرم حتی با گاری کوپر هم درباره نقشی که که میبایست ایفا کند مذاکره کرده بود. ولی کارها آنطور که دلخواه خواهی پالت بود سری پیش نرفت. در پیربیچ پدرم نه روزنامه ها و نه به رادیو توجهی نداشت ولی هنگامی که به هالیوود بازگشت متوجه وقایی که در دنیا در شراف وقوع بود گردید و این تأثیر زیادی در او گذاشت. هیتلر پنج غول آسایش را به آن سوی مرزهای آلمان کشیده بود و در آلمان هم اقدامات وحشتناکی بر علیه یهودیان انجام شده بود. پدرم ناگهان متوجه شد که فیلمش می‌تواند از سری بالاتر از خنداندن مردم هم داشته باشد. او می توانست به وسیله این فیلم مردم جهان را از خواب قفلت بیدار کند و تمام جنبه‌های وحشتناک یک دیکتاتوری را در نظرشان مجسم سازد. آن وقت فهمید چه وظیفه‌ای بر عهده دارد. هیتلر علاوه بر دیوانه بودن میبایست آنچه هست یعنی به صورت انسانی بیرحم معرفی شود. پدرم سناریویی را که شش ماه بر سر آن کار کرده بود کنار گذاشت و در صدبه تهیه سناریویی برآمد که در آن هیتلر یک دیکتاتور بود. مدت سه سال پدرم شادیهای بسیار چشیده بود ولی در این سه سال، تصمیم گرفته بود و ترراهی کرده بود. حالا دیگر میخواست صرف ان انان کار را به دستمند نبوغش بسپارد. دیکتاتور به او الهام شده بود. و ما هم در شادیش شریک بودیم. من هم مثل وقتی که کم سالتر بودم آرزو داشتم در کارهای او شرکت کنم و تا حد امکانم به یاریش بشتابم موقعی که او فریاد میزد چارلز کجا هستی بیا به این قسمت گوش کن احساس می کردم موجود پر اهمیتی شدم. آن موقع سیزده سال بیشتر نداشتم و این قرور در وجودم بود. ولی میدانستم که پدرم در بند عقیده من نیست بلکه فقط بدین احتیاج داشت که کسی هر که باشد به او شهامت دهد. حالا دیگر بزرگتر بودم و پدرم را درون اون حالی از افسانهها ها نمیدیدم و این کاری بود که در دوران کودکی هم میکردم. حالا دیگر شهرت جهانی او احترامش را در من زیادتر می میکرد. مردان مشهوری که بیشترشان در کارهایشان نابغه بودند به دیدار او میآدند و پدرم هم موقعی که به مسافرت میرفت بدون شک مهمان چنین مردانی بود. مردانی چون لیون فوخت واگینر و اچجی ولز و ژان کوکتو میهمانانه پدرم بودند. پدرم دائما جوایز را که مؤسسات سینمایی یا سایر تشکیلات بین المللی در سراسر سر جهان به دو هدیه میکردند به ما نشان میداد. کشورهای مختلف به دو احترام میگذاشتند و او گاه به گاه مدالهایش را بیرون میآورد و به من وسیط نشان میداد. و در میان این نشانهای افتخار نشان لژیون دونار هم دیده میشد. پدرم. داستان جالبی در مورد مدال ها برای من گفت. هنگامی که در سال 1931 به انگلستان مسافرت کرد با پرنس دوگال که حالا دوک دوویند سور بود دوستی گرمی به هم زد. یک روز دوک او را به یک مجلس رقص دعوت می کند و به پدرم می گوید مدال رو هم بیا بیزید. پدرم پنج مدال بزرگ داشت و آنها را به سینش آبیخت. و به مجلس رقص رفت. مدال ها به هم می‌خوردند و چونان سر و صدا می‌کردند که پدرم شبیه شوالیه‌های زرهپوش قرون وسطا شده بود. پدرم موقعی که به اطرافش نگاه می‌کند متوجه می‌شود که اطرافیان فقط روبان های بستین نزدند و او سعی می‌کند بی‌سر و صدا از مجلس خارج شود و بالاخره هم این کار را می‌کند و بعد فقط روبان مدال ها را به سینه و دوباره باز می‌گردد. آن وقت می فهمد که مخصود از جنبه مدالهایتان را هم بیاویزید چیست؟ در آن روزگار این حادثه پدرم را سخت شرمنده ساخته بود، ولی حالا با خوشحالی این واقعه را حکایت می کرد و از شوخی کردن با خودش لذت می برد. پدرم برای ما گفت که در مسافرتش به انگلستان پادشاه می خواست به دو لقب لرد بدهد. ولی او این پیشنهاد را رد کرده بود چون به زواهر اهمیت نمیداد و تنها شخصیت فردی برایش ارزش داشت من وستید از اینکه پدرم را شایسته لقب لردی تشخیص داده بودند احساس غرور میکردیم و از اینکه او این پیشنهاد پادشاه انگلستان را نپذیرفته اندوهگین بودیم او تنها به کنه شخصیت افراد اهمیت میداد و منکر زواهر بود و ما آرزو میکردیم این عقیده را ترک کند. از اینکه او را سر چاپلین بنامیم لذت میبردیم و بعدها او را از این سرزنش میکردیم که چرا ملیت آمریکایی را نپذیرفته است. برای ما بیش از هر چیز این جالب بود که پدرم بدون تشریفات و بدون دیدن مکتب و دانشگاهی خاصی توانسته خود را شایسته این افتخارات سازد. او خودش نقشه و ربی خیش را بر عهده داشت. ولی همیشه به دنبال این صحبت‌ها پدرم می‌گفت که باید خودمان شایسته کسب افتخار باشیم و برای این کار باید به صورت شاگردانی نمونه و سای در کار درس و مدرسه درویم. اما درس خواندن برای من مشکل بود. من با دست چپ کار می‌کردم ولی قبل از رفتن به مدرسه استفاده از دست راست را یادم داده بودند و این برای من نافه بود علاوه بر اینکه لکنت زبان نداشتم. ولی وقتی عصبانی بودم نمی توانستم بعضی جمله ها را مرتب و یک نباخت بیان کنم. کلمات راه گلویم را میبستند علاوه از شاگردان دیگر کنزه تر بودم و برای اتمام تکالیفم به وقت بیشتری احتیاج داشتم. به همین خاطر پدرم به پیشرفت های درسی من ارزش بیشتری میداد. ما در آن موقع درسهای مشکلی داشتیم. گاهی وقتی از مدرسه برمیگشتم پدرم به کتابهایم نگاهی می کرد و مخصوصاً به دستور زبان و علم معانی و بیان علاقه زیادتری داشت. به من می آنچه را که در این هفته یاد گرفته ای نشان بده. او نقش پدری را بازی می کرد که بر کار پسرش نظارت می کند. در مورد دستور زبان از من سؤال می کرد و غالباً سرتکان تکان و اشتباهاتم را گوش زد می نمود. گاه که درست جواب می دادم می گفت بسیار خوب پسرم. گاه گاه هوس می سوالاتی عجیب از او بکنم و این باعث می شد که بحثی دوستانه بین ما درگیرد من و او ساعتها بر سر دستور زبان انگلیسی بحث می کردیم و من با همه بچهگیم می دانستم که پدرم به بهانه آزمایش من معلومات خود را افسایش می دهد و به نظرم عجیب می آمد که او در فکر یاد گرفتن دستور زبان باشد چه احتیاجی به امتحان دادن نداشت و کسی هم او را بدین کاروانی می داشت پدرم در همه سالهای عمرش این تلاش را داشت که بر معلومات کلاسیک خود بیفزاید همیشه یک کتاب دستور زبان کنار دستش بود و گاه گاه به دان رجوع می کرد. پدرم وقتی که اشتباهات دستوریش را یادآور می شدن می خندید و می گفت چه کسی زبان را اختراع کرده و چه کسی حق دارد دستوری برای آن وزن نماید؟ ولی هیچ وقت اشتباهی را تکرار نمیکرد و حالا دیگر چنان بر زبان انگلیسی مسلط شده که هیچ هیچکس نمیتواند بر او ایرادی بگیرد. او برخلاف آنچه مدعی است تسلط زیادی بر زبان انگلیسی دارد. در آن زمان که بچه بودم فکر می کردم او همه لغات را حفظ میکند. چون هیچ وقت نتوانستم مچ او را در حین یک اشتباه بگیرم. مسئله دیگری که برای من بسیار جالب توجه می‌نمود، علاقه فراوان پدرم به کتاب خاندم بود و نومیدانه و لجوجانه جانه می‌کوشیدم تا در این مورد با او رقابت کنم. ولی غالباً مادرم که کتاب خواندن زیاد رنجورش ساخته بود، مرا از این کار باز می‌داشت و وادارم می‌کرد تا با بچه‌ها مشغول بازی شوم. در آن موقع فکر می‌کردم هرگز نمی‌توانم از حیث معلومات با پدرم رقابت کنم. او انجیل و کتاب های شکس بیاره تشریح انسان و بسیار چیزهای دیگر را به دقت خانده بود. پدرم از میان داستان نویسان چارلز دیکنز و اگیدو مپاسان را بیش از همه میپسندید و همچنین ادگار آرنپو، اسکار وایلد و مارک تواند را هم دوست میداشت. علاوه بر این، آثار فلاسفه بزرگی نظیر نیچه، امرسان، روبرت اینگرسول و شپنهاور و اشپنگلر را هم به دقت مطالعه می کرد. یک روز هنگامی که بر من گذاشته بود کتابی از شپنهاور به دستم و گفت باید این کتاب را بخوانی. ولی همه مطالب مطالبان را به خصوص آنها را که در مورد زنها نوشته است چندان جدی نگیر. شپنهاور تلخ و بدبینه است ولی مطالعه ای آثارش بسیار سرگرم کننده است. پدرم دیوانوار سقوط قرب از سر را دوست می داشت و تمام نوشته های آلدوس هایفزلی و ویلدورانت را میخواند و این دو مدتی نیز میهمان او بودند. قده پدرم را رو روشن فکر می و بعضی نیز او را به تظاهر متهم می و معتقدند که آنچه او میداند صد سدهیست و در ورای این پیشخانه آراسته چیزی وجود ندارد. معلومات او هرچه باشد ولی این را به یقین میگویم که او را همیشه تشنه آموختن دیدم گویی او حسودانه میخواست سالهای بی کودکی و آغاز جوانیش را چبران کند. اگر ما نمره بدی میگرفتیم متأثر میشد. یک روز که در حساب نمره بدی گرفته بودم پدرم درباره انیشتین سخن گفت. او یکی از مردان نادر زمین است. من تئوری نسبیت او را می و او برای نباختن ویولون نزد من می‌آید. پدرم هم مثل من در ریاضیات قوی نبود. من اینشتین را فقط یک بار دیدم و او را به صورت مردی کچک و خوش رو با موهای بلند و آشفته و خاکستری در نظر دارم. با این همه احترامی ترسالود نسبت به او احساس میکردم. برای او در ریاضیات هیچ مشکلی وجود نداشت. همه مسائل برای او آشنا بودند در حالی که در نظر من یا پدرم اسرارآمیز جلوه می کردند. برای پدرم هم مثل من موسیقی سرزمین مطمئن تری بود. معلم فیزیک که در آغاز سال تحصیلی برایم ترسناک شده بود، حالا محبتم را به خود جلب نموده بود. او نخشه پدر همه شاگردان را بازی می کرد. او ما را گروه گروه به حضور می پذیرفت و با حقیقت بینی و تندی در بارگ زندگی برای سخن می گفت. گاه گاه تنبیه می کرد ولی همیشه به زندگی امیدوارمان میساخت و به هنرها و استعدادهایمان ما پروبال داستان فرارش از روسیه که گاه برای من نخ میکرد کرد بسیار شیرین و دلچسب بود. انگامی که فهمیدم سوار کار خوبی است، محبتم نسبت به دو صد چندان شد. او بود که استعداد مرا در موسیقی کشف کرد و توصیه نمود که دنبال این رشته را بگیرم. من هم نزده پیانیست معروف روسی کفمان به تعلیم پرداختم. کفمان استاد دخترک زیبایی هم بود به نام دولی که بعدها تحت نام دیانا لین هنر پیش سینما شد. من هنگام درس به دلی خیره می شدم و دو دل بسته بودم ولی هرگز جرأت نکردم قرار ملاقاتی از او بخواهم. پدرم نسبت به پیشرفتهای اولیه من در نواختن پیانو احساس قرور می کرد و به من می گفت بنشین و چیزی برایم بنواز. آن وقت دستش رو به پشتش می‌زد و نزدیکم می و با دقت گوش می‌داد و سرانجام می گفت اوه چارلز اگر زیاد کارکانی پیانیست بزرگی خواهی شد. بعدها پیر زنی از دوستان فامیل برایم گفت که پدرم وقتی کودک خرد بودم اظهار عقیده کرده بود که من سرانجام موسیقی بزرگ و مشهور خواهم شد دلم میخواست پدرم به وجود من ببالد موسیقی برای او جاذبهی سخت داشت ولی بعد از شش مختمرین بدی نتیجه رسیدم که نمی توانم هم در درس و هم در موسیقی موفق باشم ما در مدرسه گرفتاری زیاد داشتیم. من به علاوه در کارهایم کند بودم و وقت کافی نداشتم که صرف پیانو نواختن کنم. های و گوشهایم ورزیده بودند ولی خواندن دفترچه نت وقتم را تلف کرد. به همین جهات مجبور شدم درس پیانو را کنار بگذارم. پدرم از این کار بسیار ناراحت شد ولی هرگز نخواست مرا به زور به فراگرفتن پیانو وادار کند. در تایی دوران تحصیلات حالیه، هرچه ممکن بود بیشتر به موسیقی توجه می کردم. زندگی و سبک کار آهنگسازان بزرگ را موخدم و همین کار هم تخصیل پدرم را برمی او اون مغرورانه به دوستانش می گفت، من تمام آهنگسازان بزرگ و قطعات معروف را می شناسد.» آه، چیزی برای ما بنواز؟ این حرف پدرم چون این بود که گویی من خیلی قطعات را می دانم در حالی که تعدادان از سه تجاوز نمی کرد. آرتور روبینشتاین و ایگور استراوینسکی غالبا به منزل ما می آمدند. هم یک بار به خانه ما آمد ولی من او را ندیدم چون برای گذراندن تعطیلات آخر رفته به مسافرت رفته بودم. انگامی که پدرم خبر آمدن او را داد به طرز تسکین ناپذیری متأثر شدم. تصورش رو بکنید راخمانی در خانه پدرم. راخمانی نوف که نه تنها آهنگ ساز بود بلکه یک پیانیست و یک رهبر ارکستر برجسته هم به شمار می رفت. نوف که شاگرد چایکوفسکی اولین راهنمای من در دنیای موسیقی بود. پدرم را در مورد او سال پیچ کردم. که را دوست می داشت؟ چه موزی صحبت کرده بود؟ حالش چطور بود؟ تمام این سالها پدرم را سرگرم می کرد و او راخمان نفر را برایم چانین تصویر کرد. پیرمردی بود خسته با چشمانی تیزبین. انگلیسی را بسیار بد و با وقت صحبت می کرد و پدرم برای اینکه تصویر روشنتاری از او داشته باشد عدای وی را در آورد. مردی خسته پاهایش را به سختی بر زمین می‌کشید و بعد ناگهان هنگام کمی نشست و به بحث درباره موضوع مورد علاقش می‌پرداخت، به موجودی پر حیجان تبدیل می‌شد. اندکی بعد به اتفاق نانا برای شنیدن نغمات نف به تالار کنسرت‌های فیلارمونیک رفتم و پیرمردی را دیدم که با خستگی صحنه را پیمود و پشت پیانو نشست. و بعد ناگهان تغییر وزن داد و به صورت نوازنده جوان و پر پرحرارت درآمد. آن وقت به یاد پدرم افتادم و متوجه شدم که او چقدر ماهرانه این موسیقیدان بزرگ را در نظرم مجسم ساخته بود. یکی دیگر از میهمانان ما ولادیمیر هوروفیتس بود. هنگامی که او و همسرش واندا به خانه ما آمدند من 16 سال داشتم. همسر او دختر توسکانی بود. و دختر کوچکشان سونیا را هم که آن موقع هشت سال داشت همراه آورده بودند. هرویتز از دخترش خواست که چیزی برای ما بنوازد. آنچه سونیا نواخت احجاب انگیز بود. ولی هرویتز داد و گفت باید دخترم را ببخشید. او این اواخر تمرین منازدم نداشته است. دخترم کار کن. ولی سونیا تمرین نکرده بسی استادانه مینواخت در این بیم بودم که مبادا پدرم مرا پشت پیانو بنشاند و من مجبور به رقابت ناشیانه با این دخترک زبردست شوم. پدرم از نوازندگی هوروبیتس خسته نمیشد و با تحسین میگفت او سخر را سوراخ کند. گویی یک ارکستر مشغول نوازندگی است. پدرم دوست داشت به موسیقی با صدای بلند گوش بدهد و هنگامی که رادیو را باز میکرد گویی توفانی به راه افتاده است. و تازه نزدیک بلندگو هم می نشست و از اینکه میدید من هم به موسیقی علاقه دارم خوش میشد. می شود. گاه گاه هم گرامافونش رو روشن می کرد. موسیقی رابطه میان من و او شده بود. ما دوست داشتیم درباره آن صحبت و تبادل نظر نماییم. پدرم دل باخته یک قسمت از پرده سوم اپرای پارسیفال از سر واکنر بود و گمان می بردم که موسیقی دلخواه او همین قطعه باشد. به شنیدن آن در حالی که سرتکان میداد به من می این رو گوش کن این رو گوش کن و بعد میافزود چطور او توانسته است چون این چیز زیبایی بیافریند و بعد از لحظه سکوت می این انسانی نیست خدایی است با وجود این واگنر در زندگی عادیش آدم جالبی نبود ببین بر سر دختر لیست چه آورد و چطور شهر پر از طلبکارانش را ترک گفت؟ وقتی که موسیقی رداسای واگنر در اطراف پدرم می‌غرید، اون نمی‌توانست سر جایش آرام بگیرد. از جا بر می خواست، قدم می‌زد و سردکان میداد می‌داد و واگنر را می‌ستود. ولی لحظه‌ای بعد، زندگی داخلی او را سرزنش می‌کرد. بعد از ماجرای جوانباری و اتهام کمونیست بودن که بر پدرم بستند، دیدم او را به همان صفاتی متهم کردند که به واگنر نسبت میداد و این را شوخی استهزا آمیزه تقدیر می دانم.